این دادی که مجموعی روی را شد می شد باشه این کنه رو بودن. و هر که این برایت در مسابه حدیثی فیدی ما مرمون صاحبه مسابه در به سلامون جلد مرکو و قدار شاکر مرمون قدیم شاکر مرمون در با مقدمات خضا یک بایی فروردن برای گزید تشکر برسده از تقریبیم حوالی خودش این برسوزی هرز می و از چی جامعه حادیث که این قسمت جامعه حادیث رو تمام خود ایشان شده این قسمت مقدمه کتاب و در, در زمان خود آجام شده و مزید ایشون در باب پنج از مقدمه از روزه مقدماتیش شبیه مقدمات خود وسائل و که پرگاه باهم دارن. در اینجا مطالب دارد که در وسائل نیست، در, در وسائل مطالب که اینجا نید در باب پنج مدرد حدیه دخت شدن مناسباب رو و روایات رو بودن خبری که خواهد جمعی هم داره برمکات ایتالیشی و ایتالیشی خوبی ای ما تباید هستن کنید تمام این روایات رو کهشون رو بودن بخون از صاحب در مثلا همین با باقی که داده روایات رو, رو متطورده بوده این چون مرموم صاحب سالی تویه همه خصاص مرمومات که مختلف بودن در باقید روایات رو طارق بندی بکنن از هم سایت روایت هست این طوری از در مباردی شد بخواه خوبی هم هست چون من سابرم توفید دادم شدارم شده در این که روایت به با بادواحد با رو چیچوی بیادیم اون خودش یک بحثیست در کسانی که جامعه حدیثی نبشن که ام ما بگاهیت به بادواحد رو چیچوی بیادیم اون اصلا در کتاب اوادر بخون بحرانی به ترتیب این په اول این رو این طوری در کتاب جامال در کتاب سال بیشتر کرده. رو سه هستند سه هستندی ساکنده سه هستند رو گرده مهمال بوجه دست ولی کردم و یه طوری هم قبل بازند که روایات اخوات هوایی هستند که شاید اجمالی تنم در روایات رو گرده اضاعتی میرن کتاب ایشان هم تاریخ اول یک تعداد کوچیک بس استاب است خواهد اول که حدیث یک و حدیث یک از با باشه و دوم سه ربویاتی است که حتی تاریخ در متأخرین مانند نوینی بود. کردن سوکر نمرد و جریان. و اون هدیت که در می‌کند. به از این خبر است. لعنتی. هسته در اینجا بکنید های بروژه چند اینجا هر این رو برمزنن. یک و دو و سه این طایت هم اون روایت مهمتری که داریم که رون ترسط شده این رو به سلام پرمونده این کتاب های بروژه در شماره در شماره 24 بوده در شماله 23 و 24 25 شمال رو در شماره 24 داره این مصد نظر رحمان این یکی رو اگر میخوادن شماره شماله 3 بهتر بود ترکیب باقه با با هم نمیدون حدیث شده با این جایی بیگری نده از همیرون اومنین این رفت که مظاهره به راست باشه و محروب نیست در وقتی هم به روزید خبر داشته باشه رفت که در وقتی هم به محروبیه رفت کلیمه رویست که در اینجا بودن این رفتی که به به روزید خبر نداره و راست موقعه ایم هست یعنی, یعنی شباب بردی ها و بردی ها رفتی این حدیث شما اون اینه که بعد تو اولادو کل دکو اولادو کل دکو این مرات اینه از امروزه اشکالی که ملاسک در شیام نمیاد و امانشون ندارن، اولادو تو کل دکو. اینو حالا ما این باشه که بیگوییم هم نداریم. حتی پنج این اینو از کافی از اصول کافی کرده سریع مثلا رو در حمزه یک آگه ماشین با حزیز اما حمده نیعی و افصاد هر اطفار قومی سرسان جدیر ان حمده محمد که مارد اشکری قومی سیار بزرگوار انه ابن محمود حسن محمود از اجلال از خارمان جمیل به صادق سرس و امی اقویده که جلورت به اصطلاح حدیث رو تورم که بسریع عبریست قام سمیش حالی سلامی اقول الله ازمه حد از خوابی ری حورت همون و اخت همون و اخت همون لحنی سلام این اخت همون لحنی سلام مورد دروب تقییر اشاره تقییر کنی بودی خبر برد و این اخت همون این حادم و همخت همون و همخت همون لذلی اگر لذلی باشه دانیو خرد بخونی ادا و سمه هرنی سیون سواه اینا و یوروه هننا فرمی اقوید اشمهد این آدم که چون بزن کلام جده چون این مراد صحبته سیمان در حمینه در بوده شد اگر حضری از ما نمرو شد قبوله می شد اشمهد و جهد بود و که فرمان دانه به با هدایتی لذت هدیت می‌نده نه خارج این نابوس نه و یا یا خارج هند دوست دارید ما برای هدیت سال داشتیم سهیم مشارکت که هر هدیتی که خیلی بدونمون پیدا نمی‌کنه سریع این یک نزمنی در از که ایشون یکی شبه بوده، جای دیگه داره، مردمی دیگه داره، این در کتاب سرائل، نویشه جمیله، نساله، من اینکه آخرم بکشم، بخواستن سرائل میگرام کرده در از رو هزن محضم نرک کرده، در از مصفل وقت، مصفل رفت بود، این کتاب هزن محضم این همونه، محضش آخره، به ذهنم بیاند حالا آگه قادم حلیف صحیح به هر و مسئله بشه اجمالت درسته اصل خود این مطلب ما این مطلب از فهرنبر هم داریم که معروف است از فهرنبر بر حدیث حلیکه بگشیم در باشیم با حق فرط همزه حلیکه حدیث حلیکه حلیکه اون به استاداه فیزیکی در حفظ انگور روشی بذارن به استاداه همون تاییم انگور اون استاداه هم حلیکه میگرد پیاران روش زیر حدیثی نشسته مثلا مشغول تقال خودمان شد خودمان شایی نمیده یه در حدیث از منزشون رو بگه نمید عبودن رو در براناتی از به همه این کار نمید این شبیه حدیث حدیثی نه شبیه این از ندارم در کتاب حدیث دردی این حدیث رو ایشون در اینجا آورده و خوبا نروح بازن کاری که این با درست نشده خودیشون در معدمی خود بار که داده خود مضمون آل بود در مفترض و منها ها در اخبار متعارضه اصلا یه با میاره باید اخبار متعارضه دلالتش می کنه بر که اصل حضیت خبر مفترضون هست بر از اخبار یعنی به اصطلاح ما اصطلاح هم اخبار اصطلاح من این توضیح رو اجاره اجمالی رو کنیم که خیلی نافه بحث تاروز و قیبیت جمع یا بر جمع بناتون تاروز بسیار غمینه هست که از تاروز تا, تا اونکه این معلومات ما از آن کشف شده به اصل این بحث به صحابه بهم بیاریم این خیلی نکته خوابه ترجعیه در ما دینی ما از تکنبر این اهل سنت حالا ما یه نواتی از روی که در نمی کنم توضیحش هرز که چه مشکل داره؟ اهل سنت در قیمه در تاروز چیزی نعمل نکرم ندارم از روی هم دیگر رسول ها گفتیم آقا شما متعارد این خدا شیل نقطه میه این بیار یه بار تاروزی که اهل سنت دارم و قوائل حدش کرد چون حدیثان رسول الله قانتاً وقتی حدیثان رسول الله کرده یعنی در تمام اونها مجال اشتهاد کنسی در خط روانی سانی هم مرضی میشه که تا در روایت اصبایی نبوده اگر سبوطی بوده سبوطی نبوده در از این خیلی نقطه زریفی که در احل سنت یک دانه روایت علاقی نداره این خیلی توجه خیلی جای توجه مذنب ما از امیر مومنی نمید که به ما را کلمه شما متعارض از امام واقع هم تا آراض ما از امام صادق سراخت الله سرامو حالی و تحریف از خواه ما زمان امام زمان موسیقی که باست موسیقی یک تاریش ایسمانی برکسی باشه که معلوم بشه چیه خوزگاه چی بوده چه جلیمه و و خود поставنون دین استدلاد به روایات الصلاح اومد استدلافا روایات در کتابه اهل السونل NEAR auction چون دارون اخوار委فر همارد مردم چه روایات که هست بعد یعنی آنچ احضانه دارم ندارم، ما داریما اوو اهل اخوار در ما الگوزیت خوال واقع روایات ال سن اصلا روایت الاجیه از آنکه بیاند به ما دارید روایت الاجیه بخشن عقلی مسلم که حقی حجت خبر مخلومان همه بخشت آرز ممنونه داری که پس باز حجت خبر پس خود درقه بکنیم روایت کردن در باب حجت این بودی ممنای ما هست. نه ممنای اصحاب عرسان تا که ما خبر داریم عزید. به اصطلاح روایات اهل سطح اسلام از امیر سوال شده راجعه روایات الله از اون در نهت ولی امیر المؤمنی همه از ارواد یک از تفایران که تفایران برکن در تیه 23 این علامت برد مرکن مرکن ارواد ارواد نشد تماقض نشد توی نشده باست همین که ناور سلیم هست که خواهد از همین رو صاحب من تعاوز رواز رسولان که از هر یکی جاونده بخواهد تعاوز اثباتیه در خود که رواز رسولان نبوده روباستی شده باقیه نه اینکه خود دیگرم بردیو پرمیده به هر حالی یه محلی نیست که باید گوشت به ساکه مجموعه به باید هستی که اتباره علاجی هست اینجا حالا چه مرداری حضرت بعدها این بحث بین اصحاب ما جدی شد حضرت زمان مستمیت چه را رو برد که چه خواهد درماره را در که من اشاره خواهده چه ما یکی بیرد جمع ببینیم داره حالا یه امزاج چون بحثاش در مرد خودش این شما به امراه هم متناسب با مانعنقی هم در کتاب مسائل و معاصر ایشان مرموم دهار در این دو کتاب که در کتاب خودداری ما متعابقه دارم از یک کتابی از قصف راوندی که قبل ایشان در سن مقدس هست از قصف راوندی رواید نبیر کرده نه رواید چند رواید که الان در مسائل دیگر ما موجودی در اون چاپ قدیم وسائل اسمش اینجویه از قسم راهاندی فیرسالتی فیرسالت فوقها کلمه فوقها چاپ شد این اشتباه باقی ها بوده اشتباه به اسم علفه فیرسالتی علفه ها نه علفه ها رسالت فوقهای نداشته ایشون اینکه بود به اصطلاح فوق و به هر دوشون به ها منظرم جلد دو باشه اشتباه نکنه یا یکی یا دست و سال هم در جلد 18 همون بابه فضا که ارز کردن در اونجا کشان بوده روایت معارض بابه تاروسی حالی گروهیری همون تو مقدمات ها اخبار الاجهه که هم جلد مقدمات ها بردن زدفرنده. اینا از کتاب خود براوندی این رساله از این روایت کردن که فعلا این روایات منحصه در کتاب خود براوندی است دهی از این معاصلین ما که در بحث تاروز نمیشن یه بحثایی راجع به سند وصائل به این کتاب و از این کتاب مالیشون هست و مالیشون نیست ولی تا چند و تأخیرن چند طرفه ایمان مجموعه رو با که جداگان شاب نه چند طرف باید سیده ناشیم دساله ما نرسیده بحثایی کردن خب این هم دور از آبادیه این دساله رو هست کردن صاحبه هرم جو اولین کسی که نهبی کرده مرموم مولا امین در فوازی مدنیه است مؤسس تفکر افتباری ایشون نهبی می کنه قیل از ایشون قبل از ایشون و صاحب هر دو از ایشون گرفته هم ایشون هم تریف نداره بسید بقیه که گروش تریف به قطوراوردی اصطلاحا ذهب نکرده در کتوب قطوراوردی هم مثلا رسالتون خواه ها یه عنوان یا رسالتون علفه ها رسالتون خود احادیث اصحابنا به اثبات صحت در حد ها مرموم مولا محمد استرابادی و این استرابادی این از این رسالتون احادیم کنه که مرموم خود سرابادی کرده با شراغی اصحابتونه که رو باید اصحابا سریعه بحثیت سندهی روش نکنه بسن شد جبه قطره. اون رساله الان به ما نرسیده احتمال هم داره یکی که از بحثهاش متعرض شدن چون مرمون دار محمد علی توضیح کافی و که اون نسخه و کتاب حقیقت اون نسخه نداده ما الان خیلی اطلاعات دقیق نداریم چیم رساله ای رو هم در آثار گفت راوندی بیشان نصرت ندازه خب احتمال هم داره مالا سفردالله راوندی را را را باشه رساله رو هم. که وقتی در کسی که اول امام مال غرب امام بودنیش نیست امام سعد بن طلحة زمانش کار باشه ما چند دنیا و اندیکه ما خود را اندیکه سعید بن الهبت به هر حال رساله ای از این مشاریجش رو هنوز خوش میکنه. رساله ای که یا در دنیا کتابی ما الان هیئتی این رساله هنوز تشکیل ندی، اکنون مصدر اصل و به کتاب مال نامه محمد امینه. مسئله این دو اسم نبودن نه مرحوم صادق سالده ها نه از مستقیم از رساله نرد که این شبهی اینجا شده که چون اینا همون مقدار یه کتاب و هر همون مقدار نرد کردن اگر رساله درشتی ها شده بود خاطر میشه بود نرد کردن بری به مستقیم کتاب درشتی ها شده این راجعه بگیم اون از سلسل سلسل داره ما اصطلاحاً ارکتر بیم تا طریق شخص به کتاب رو اجازه میگیم طریق شخصو رو در روایت سند میگیم اصناع اصلا کلیم با سند از زرار نهتر میکنم و اگر از کتاب و زرار رو کتاب و زرار اصطلاحاً اجازه بیم طبعاً تاییده نهبه توله هر آوردی خودزر آوردی که در برمشه شومه ایشان اجازه زیاده با آثار سلوح از راه سلوح این رازن رو غالبا این اجازات خیلی بروسی خاص نمی خواهد با از یه حالی بروسی هایی که در صحباته غالبا نمی خواهده غالبا ایمان در حالا یکی ایکی ای رو ای ای ای صحبت کردن جاشن اینجا هیست غالبا الان در کتب ما بیشتر در کتب تراجع احوالات اینها آمده مثلا چند مفید یک ای ای ای ای در که در طبعات حلامی متعرض شده که نگاه بکنن کنن از اون رو باید باید باید نگاه رو کنن یک مقضای متعرض احوال اشان شدن وانا قدرد فنجم و شیخمان موشن آقای گونجا لذا ما اون بخش رو الان برسید نمی‌کنیم. محمد علی دو پسر علیه نوی سمن مرموم علی مرزوستان از هم خودش علی همیش که از ستارش علیه ایمان مشاهیت بزراردیه همه همه همه همه ابلبرکال علی حسین همه همه همه علی جعبال اسم بابوه از مرموم شیخ صدوق حالا این روایت در آثار صدوق نیست پس این اجازه ایشان تا صدوق شد باشن این کسی که ایسان هست ما کسی که او خود همه در کتب صدوق نیست وقتی صدور خیلی از خطاب شما رسیده در هیچ شکلی که دعوای که صدور فرمودن به ما نرسیده این دو قاعده تن دو احتمال هست یکی اینکه در پاسال صدور باشه که به ما نرسیده ده خطش اینا چند بار تکرار شده فرض میمانه ولی قاضی عامه خدمت شعر به کجا کار باشه یا عادتا در خطاب صدور بود که به ما نرسیده یا احتمالاً مصدر یک کتاب دیگر ایست و سروق طریق از اون مصدر این احتمال شما پر میده در این سروق هم محمد از موسط به متوقع استادی ایشان آسیل داده شماید یقا میشه من سردابادی علی ابن حسین سردابادی روان سرداباد شد دو تا بوده خون بوده به بوده محله روان سرداباد شاید ما باشه، نه؟ سر. مثلاً سر عبداللهش علی مهدی روز دیروز ایجاد کرد روشن این سرداواهی شادی از برگیه، انا احمد مهدی عبدالله کی برگیه؟ هکت داره، مثلاً از های برگی بوده. خودکار که من ازش تحسین کنم، چون الان یک شو شده که این درخواست سرداوه نیست. نه از, از ما داریم زیاد داریم ایرزین هم داریم اگر خوست را بندی هم داریم که از سریش صدوق نور می در راستان صدوق می این اصطمالی داره آن اشاره یه وقتی من توضیح بشه شهر بودم وقتی باشه شهر بودم اصطمال داره آثار برقی از آثار برگی باشه تفایی پرمون؟ اصطمالا از آثار برگی باشه یه اشاره اجمالی بکنم که یه شمی بحث داره ما از کردیم سردابادی در برایات ما که اسمش علی موسین سردابادی یه مشغوله از راویان برگی. هم از, هم. از برگی کلینیم از ایشان نمرو استاد از سردابادی ما ندیدیم سردابادی از غیر برگی نرده کنه رن از برگی نرده ازا مزون میشه شاید اصابه بدار برگی سوی هر هنه هر که ایز منو از استادش یه رو برگی بره یه مند یعنی چیزایی در برقی نرموزنی که سیگه نرموزنی من خیلی اشاره سریع کردم بحث شکل احتیال رسولانی داره جاش اینجا و پس مابر این دو احتمال در مستر این حدیث هست یکیش کتاب برقی باشه با که این یک نسخه نسبتن شامسی نسبتن یا کتاب صدوب باشه که ما ها نرسیده در اینجا اینجور از احمد مردی الله عن ابن پزاد حالا اصلا این اسم فضال به قیمه بعدشم حسن الجه هم باید باشه حسن لیکن برگیه کسر محمد نبی عبدالله برگیه کسر روی ایشون ابن فضال رو درک نکرد اکمالا من عبیه ایست شده باشه من عبی این ابن فضال آره بودت رو لعبد ساله موسیم جعبه ساملاله هل یه ما فی ماورد علیه من کم الا تسلیم دکن اگر مطلبی از شما رسید ما باید تسلیل بشید حالا هر جوری بهم دید قال الله والله لایستان با. لا اکم لا یعنی حتی اگر متعارض هم بود یکی یک روی بود یک بار تسلیل و سابقا هم بیان به این مناسبه نه از مبانی خودم های از خانه را یک معنی و بعد هم برزید در روایت متعارضه همینه تسلیل بشید یکی باید آمده سرکرد و این سرکرد یکی آمده شارکرد و این شارکرد از هر کنگه این رو اصطلاح همون اسمی باشیم مختب تخییر تخییر از اینه کلینی هم همینه مبنوی مبنوی کلینی هم لا یست هم این مبنوی تحریر. هر شروع شروع شروع قبول کش میکنه گفت دوبار و سه بار سه بار قلتو تیور و عبیرز اون تیور و بود من این رو توضیح را از کردم مفصلن نقصی جالبی من از کردم امده سدور روایات ما زمان باگره از زمان موسیقی عفر اما روحات بیار دویم و که یواش شواش از زمان موسیقی عفر بحث عرض هم مفترح شده که مثلا از امام صادف دو تا حدیث رو بود. به هم رضا تو توی بیادی همی داریم تا امامو تمام یا روان روی از الله حدیث و میاه و همه خلا بود شای بود یا انگه متحکرین ما یکی از شعون انگه متحکرین ما چونی در روایات امامو صادق و خیلی عرض اگر باشه کم رویان رسول الله یا رویان امیر رو ممنی کنه یه شرکی داره جفتی اما ما در روایق امام کازم و بعد امام رضا بیشتر شد امام رضا سهانتار و سهار سهار سهارمون علیه مجمعین روایات داریم این طوری میگه و یا واعنها خلافو و فبعیه ما نخور فقال خود به ما خالق القوم و ما القوم القومه پشتنه بکنیم این روایت اون اون است که ترجیح رو به فقیه هران از این روایت الان ما جایی دیگه شبیه این تو روایت عمر بن همزله هم اما بعد از رتوه بعد میگونی مثلا تو تا حدیث معارضا که او سب و عدل و خلا نمیگه همزو مشغولن هم. میگونی برد که مواقع آمه مخالق آمه, آمه اما در این حدیث معارض خود به آمه و مواقع آمه پشتنه صاف این رو ترگیه هیچی دیگه از نشده برای طریقه در شده و کردن و از کردن شرابه هم عرض کردن مثل مردم صاحب اداره اعتقادش اینه طریق وحید برای حل رواز متعارضه طریقه این مرمون صاحب اداره زیاد تکرار میکنی یا توحمن و روای عرض طریقه علاقه یه اصل خود بریگه اینجا در عبارات تکراری شد اینجا اصل اولیه در کل تا آرزاتو طریقه یه شرک نشد در جای خودش. برآن این هم واجه به این روایت به لحاظه این مضمون جورایی دیگه هم داری یه جاشون جلال نیست احتمال داره که روایت هم بشه بر طریقه یه شعون حکومتی این مطلب که طریقه در خلاف روایت اهلسانت باشه یا بر خلاف فتاوای اهلسانت باشه یا به خلاف احکام حکومتی موشی سه جور درز موشی دفعه میکنم اینشالا شهر هست جمع جمع. احتمال داره به فضایات حکومتی هم بخاره تو روی تو نهندله و تو عمر نهندله سوال میکنه یک شما دو ساره بازده یکیش بار باید که آمه میخوره اما با حکومت نمیخوره یکیش برسته اما میخوره مریار حکومت و این بعد حکومت چی بوده؟ ملیار حکومت هسته نه بباریتشون این هست در بباریت آمان لذا خوب جهرزه به یک شمه دیگه اجمالا از این بباریت میشه که از امام صادق بباریت متعارض بوده البته سنه حدیث این مزار مشکل داره بلایت خود هم سهربادی توسیل واضح نداره و سنه در داره فدیسه شماره هست مرمون برقی در محاسم در کلال محاسم احمدا محبی اندلا محبی اندونسه محبی رحمان تا از خوب الان اما بحثه خاص خودش داره بجا شده اینجه است هم امره که ما شمر و شمر نه خوبیم امره نشمر حالا من باقت مشروط شمر و امره نشمر و جعفی ایشون شده امره نجسی شده که برماید شخصی اصطوری معروف اتبوحه بوده نصافا به اون تصدیح شنید نیستی نجاشی بوده احتمالا نجاشی من دار موزه اتقروه به ایشان در نظر گرد این جاور مراج جاور ابن یدید که ایشان جعفی میزد از درست ما اعرض کردیم مخصوص این چهره ای که اصلا ما میشناسیم اصطلاحا به شخصا شفت بولو هم جاوره اولین شخصی که وقتی من میشنه برای و زیاد داره و شفیه دیگه درسته زیاده کافی از کرده این که میگن جاول مثال چوب میشه و مثال دیوان دیوانه کاره میکرده بخینا دروح اینو اساس نداره هم جاولن عبید عقیق علیه السلام مئیار حدیث و همون دو نفر کلام این دو نفر ایست یعنی شوقهی خلو شن و امروز نشن رو برد جاول ساه اوفی قبللی نفسی بیده لحدیثون واحدون فی حلال محرام تأخده و هم صادقه خیر من الدنیا و ما حملن من ذهبن و فردن این خیلی یک خودش پس یعنی یک مجموعی که حدیثون واحد در حلال محرام خیر من الدنیا حدیث دردی همینه حدیث دردی همینه حدیث شمارده هم همینه این از شماره هست تا در یک تایف هم از کنم در اون تایف بوده اینجا به تایف بوده عمل کرده، کردن تا در یک تایف هم درداره و داره که احمدالله تعالی یقول ما آتاکم رسول تخضور و ما نها کنه کن همه هم تخضور این خالی مبارکه ما آتاکم رسول در بقیه احادیث نامده این خوب دفت بگیم ما این همه شما در مطور حد شان توابع لطیفه دارند. از کل و هشت و نه و ده همین مضمونه و به اصولی متعدد بعدشان خلق کرده جا می‌دهد. تو اونا این آیه نیامده و که ناله آناله یا ما و ما نه حاکم آنها و به حسرت ظاهر هم به حسرت ظاهر ما آیه راکیه که کلام صابر ندارد. Allah احتمالاً یک کلام دیگری در بحث آمده خیلی بگو نه و علاوه بر اینکه الله تعالی گفت و حدیث حلال و حرام به قرت معنا داده از متوجه سه ستاره دیگر بود. که یکی بیشتر جابر دو تا شخص شخص دیگری در هیچ کدومشون در اون حدیث دیگه جابر این آیه نیامده علاوه که ان تعالی یعوض و به دیگر که یکی از دو شخص دیگری در هیچ این آیه نیامده که ان الله تعالی یعوض حالا این از اشتباهات محاسن برگیز چون نشونه کمی زهیف بود در حدیث. یا از خود کتاب جابر اشتباهی کنید البته اگر این بحث اشتباه رو بکنیم بحث اشتباه رو کنار بگذاریم بحث اشتباه رو کنار بگذاریم ما باشیم و مختزای قاعده اگر بگیم این کلام مال امام خوب زفت بکنیم اگر بگیم این کلام مال خود همی این سکر معنای خیلی لطیفی داره نمید میکن بی رخی ها اما این خیلی بالا میره من اگر آقایی آز باشه از ابن حض در کتاب الاحقام خوندیم ایشون میگه که اینا نه نظر نزدک، ظر ما شیار دیمون قرآن ایشون قرآن ذکر هر حدیثی که یعنی حسطقتون انسقه هم ذکر اصلا او اعتقاد داره که حدیثی که یعنی ح این هم از مسادیق ذکره و این از مسادیقی که خدا حیب شده اون دلیل از از اون از کرد انقلاب تکیف هم بازه انقلاب معناش این بود ما مطلب به واضع بودیم بعد از روایت مطلب به روایاتیم این بست انقلابه اصلا یعنی تکیف ما دیگه به واضع نیست، تکیف ما به روایاتیم اگر این حالی در حدیث جهاز بروایات شد مشهرگی معنیشه این که چنین چیزی معناش بالاست ما را میسرد شبیه کلام ابن حزم و لاله که ان الله تعالی يقول ما اتاكم رسول به هر کس میخواد میگه چنا امام محمد بفرماید آیه مبارکه ما اتاكم رسوله لكن حدیث واحد صادق مثل ما اتاكم رسوله حدیث واحد صادق این محضاق ما آتاکم رسوله شبیه همون انقلاب تکلیف که از که هم شما بعد از که تکلیفتون به ما آتاکم و رسول بود اول شد تکلیفتون به حدیثون واحد این ساده اگر این من ظاهرشی ندام اول من از خواستم برای تغییر زن بود لیکن این خیلی معنی عجیبیه شبیه همون حرف ابن حرب میشه و این که حدیثی که انسان میخواد بگیره این مصداق ما حافظ کن رسوله این یک دو چون در روایات احلبه حجیث خبر این معنا مفرح نبوده شاید جابر میخواسته این نقطه رو بگه حدیث و واحد واحد تأخضوها هم ساده یعنی امام حالیت از سری لحظه ساده کلیات و است مراسل العديد داره سه تا مراسل داره اگر ما باشیم یک مقامی که بالا در کلیات مشککه هم به مسئله اعلا بکنه خالص اینه اونی که صادق مطلق و هیچ در شک شاه پس و شائبه‌ای که در تحقیق دامنا نکرده پس حدیث اون واحد طرق ان صادق به نزد ما منظور پس مراد این حدیث این بوده یعنی راضه اگر شما محضری رو از ما نرده این محضاق ما آفاق ما رسوله پس این محضر دارید رو بلا پس این رفتی به حجیب خبر شده نداره که مرومات روزی دیگران رو بودن دیگه این قریمه فیل حالی زیرون رو بود از به حدیثونه کلانه حدیثونه لیکن به شد مراد از ساده، در روایه اصلا یه بابی در اصول کافی کن و معصادقین یعنی علاقی من مثلا آیه مقالکه کن و معصادقین هستی در احلیبه تامداری پس بنابراین امام که انما اینجور میخواهد میفرمان تو محلی رو از ما بگیری که انما ما آتاکم رسوله ما آتاکم رسول ففروح. و این خیران لکمه ما تلعت علیه شمس خیرون لکه من از دنیا و مطیحا و داره که ازن الله تعالی یه بود ما آتاکم رسول تخضو و ما نهاکم انه و تن تخضو این یعنی تکیلی که من کردم درست باشه به ازن الله تعالی ها خیلی معنی حدیث بالا و کلام امام باغر اینو کلام رسول الله سنت رسول الله هست و شما اگر تمام دنیا خیرون لکم این دنیا و ما حملت نفرست کنید و اینها باشه این تمام دنیا هم بگردیم که این چیزی رو خیده نمی کنیم منحضر در ما منحضر در احله بکر نه دیگه به قرمه آیه نگه نافیه اگه آیه نبود، نمیشه نیمیشون بگو حدیث و باید سر خود زراره مثلا ما آتاقم و رسول پیم شکته نمیشه, نمیشه تنزیگی رو بشه ما لذا حرف ازنه هرم ورد کردیم قبول نکردیم اگه آسون باشن سلمات آقا خودی رو خودی رو خودی رو بکنیم اصلا ایشون نبود ازنه هرم یه همچه احتوالی نیست گفتیم هم احتمالش هست این هم احتمالی نیست هست اما قبول قبول نیست بعد در, در زرشی چی تیگه اون هم عجیبه و امکان علی یعنی در اینجا مخصفه یه از سق و این كاني و انه كان علي بن ابي السلام لا يامر بقراءه المصحف این خیلی عجیبه درستو قرائت به قد حدیث ها این شاید مراد این باشه که امیرالمومنین میخوان شما اگر به خود مصحف مراجعه کنید مصحف کافی برای احجای بعده بید سلام الله علی محمد و الله علیه